بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم المنون وغير المنون منون وغير المنون. ونك ونك بش المنون. بش منون اوني كي تنوين ميپذيره و اوني نادر هلا اينه اومدن قسمتي از بشو غير منون اوني كي ميپذيران بشو ميگن تي منون جاءت زينب كان النعمان ابن المنزل من ملوك العرب يظن أن أول من تكلم العربية يعرب يعرب ابن قحطان كان أردشير ملكا للفرس قبل الإسلام رد الله يوسف إلى يعقوب من أشهر قبائل العربي مضارو لا تآقب وأنت غضبانو من أجل من أشهر قبائل العرب مذروحات لا تؤاقي وأنت غربان من الورد ما هو أحمر وأبيض دخل العمال متنا جاءت سيدات أخرى جيم قد... قدمیم تو عل که به بشره دخ تو رووط فیحع تحتداد نومه سرو علامسان ا یا به تدی و تاریخ و خب در این در ما همون غیر منصرف و اسباب رو یاد بگیریم همون رو غیر منصرف که غیر منوان هست همون غیر منصرف رو جست. شما اگر لطفی بکنید دید صفحه بعدی قسمت القواعد قاعده 188 کتاب التنوین تنوین توضیح میده نون ساکن تلحق آخر الاسم نون است که به آخر اسمی آید تحضف خطن و تثبت لفظن فی غیر الوقت خطن حذف میشه ولی در لفظ ثابت البته زمان که وقف نکنید تنوین‌هاشون اینجوریه دیگه شما اونو خطا نمینویسی ولی در تلفظ اونو میخونی محمدون ولی در غیر وقف وقف کنید دیگه میگی محمد به خاطر این گفت فی غیر الوقف در غیر وقف و ما يلحقه من الاسماء يسمى منونن آنچ را تنوین به آن ملحق می شود از اسمها منون نامیده می شود ما منونن نامیده می شود منون ما فعل مزاره مجهول هست منون چه هست؟ نائبش نیست اگر نائبش می بود باید منونون می بود نائب جز مرفوعات هست ببینید مفعول هست ا اسمي اسم يسمى مناولا ما انجي هستين شو يعني مناولا يسمى اس بله يسمى فعل مجهول نائب فاعل هو مستتر اسم فاعل ايش جالس بله نائب فاعل منون و مفهول بهی یک جای البته ما یه ترکیبی کردیم اونجا اومده بود در قسمت اگر یاد مبارکتون باشه در قسمت چی بود؟ در قسمت زمانی بود که مضاف به نون وقایه بود اونو من اصلاحی بکنم کجا را نون وقایه؟ نون وقایت درس چندم بود آه؟ درس چندم بود کسی نمیداند بله مشخص شد بیایید قسمت چی بود قسمت نون وقایتی قبل زمین من اومدم در قسمت قواعد توضیحی دادم يعني اعراب شو ها اذا اتصل فعل بياي المتكلم وجب ان يتوسط بينه وبين الياي النون تسمى نون الوقاية اون روز من تنين تركيب کردن گفتن تسمى فعل مزاره هست فيا نائد فاعلش هست نون الوقاية گفتن بدل هست ولی اینجوری نیست تو سما فعل مزاره هست مجهول هست هیا نائب فاعلش هست این نون البقایه هست نون میشه مفعول بهی البقایه هم میشه چی؟ مضافون اله البته در اینی که خب بریم من گفتم میتونه اه نون ناعده فاعل بشه و میتونه بدل بشه که این بدل بودنش اشتباه هست این بدل بودنش هست؟ اشتباه اشتباه هست و ذهن یک لحظه اشتباه هم میکنه که بعد از اون من فکر زدم دیدم نه این چیز دیگه هست که یادم همه جلسه بعدی شما رو یاداوری کنم خب خدا رو شکر امروز یاداوری شد بریم جلوتر پس یه خوندیم و ما لا یالحقه یسمع غیر منوان و آن چرا که تنوین اون ملحق نمیشه غیر منوان نامیده میشه چی نامیده میشه غیر منوان ساده اشتادن من او می‌نقده یمنع علمو من التنوینی یا صرفی منع میشود علامه از تنوین یا از صرف فرقی نداره ممنوع صرف ممنوع تنوین چه زمان؟ علیف در چندین حالت که اونها رو در کتابه دیگه هم خوندید اذا دل على معنف او ختمه به تا زمانی که زمانی که دلالت بر معنف کند دلالت بر چی کند؟ بلد. یا ختم بایا شود بطا. بطا. ختم با تا شود تا علامت موننس پس زمانی که دلالت بر چی کند مانند جاعت زینبو ببینید میگه اسم علم تنوین نمیپذیره اصلا مصرف میشه علیت زمانی که دلالت برموننس کنه اون اسم علم مانند زینب دلالت بر چی میکنه بر مؤنث او به تا یا با تا خاتمه بپذیرد جان بله مانند جا فلحت و يجوز صرفه اذا كان ثلاثيا وجائز است صرف بودن آن یعنی از منصرف به در بیاد از غیر منصرف به در بیاد و سحرف بشه اذا کان ثلاثی زمانی که سحرفی باشد ساکن الوسطی و وسط چی داشته باشد مانند نه ساکنه است اذا کان ثلاثی ساکن الوسطی زمانی که ثلاثی باشه و ساکن الوسط باشه خوه هست اسم هست قائبه ازاکان سلاسی یعنی بله این اعراب بدل تابع داره،, داره خب پس میگه زنانی که اسم علم میگه زمانی که اسم علم چی بود؟ سه حرفی بود و وسطش چی بود؟ وسطش ساکت ساکن بود؟ اون موقع جائز است که منصرف بشه مانند جاعت هندون هند باوجود این که اسم علمه و معنای مونسو داره ولی غیر منصرف نیست ممنوع منصرف نیست بلکه بله بخاطر این که سهردیست و وسطش ساکن است در مذاکرها هم نوح inna arsalna ilayka nooha inna arsalna nooha ila qawmi inna arsalna nooha ila qawmih noohaana tqul eft inna noohaana ilayka ma noohaana ila noohi با بعدش با و همچنین زمانی که علم اذا خطی ما با الف و نون زائدتين زمانی که اسم الن با الف و نون زائدتين مخطوم شود مانند عثمان نعمان زائدتين چرا من یادمون درونه که زائدتين اومادیم خب الف و نون زائدةين بخاطريين قوّفنا. بعلي. عم عارف مش هم يتكلمون بالسنة. يظن يظن أن أول من تكلم العربية يعرب ابن ابنه. إنه كحتان. كحتانه. فسنعمان عثمان هنا الكلام هاي السنة كألفنونة. زائدتین دارند بخاطر این چون علمن و الفنون زائدتین دارند غیر منصرفان خب اگه علم بگیم جیم جیم بیا جیم اذا جا على وزن الفعل زمانی که اسم علم بر وزن فعل بیاد باز هم غیر منصرفه مانند يغن نو أن أول من تكلم العربية يا عربو يا عربة. براز مثال دقي. <تصفيق> يا ابنه إحسان. شو أسمان مستعملين واسطة. أرى أسمان بلي. ألفين وواحدة تان دار. هاي غير منشري. إيه غير مناونس بخاطرين كألمة وألفين وواحدة تان تن داره ببين من. في الجوار. کلمه برای اینکه غیر منون یا ممنوع من صرف باشه یا غیر منصرف باید دو تا سبب توش باشه اینجا آورده علم غیر منصرف از زمانی که خب داره ردیف میکنه بله بله فقط علمه اینجا بله اینجا علمه زمانی که دلالت برمانش مؤنث کنه زمانی که با الف و نون زائدتن ختم بشه زمانی که بر وزن باشه دال اذا مرکباً مزدیهن غیر مختوم به کلمه وی زمانی که اسم علم مرکب مزدی باشه ولی باوه مختوم نشه تون اگر باوه مختوم بشه اگر یادتون بیاد اون موقع مبی بر کسره هست سیبوه. مثلاً سیبوه مرکب هست علم هم هست ولی ما نمیگیم غیر منصرفه بلکه میگیم مبدیه چرا؟ تون اگر باوهی ختم بشه اون موقع جز مبدی هاست و جز غیر منصرفه ها نیست پس زمانی که مرکب مزدی باشه ولی باوای ختم نباشه و اون موقع غیر منصرف است مانند مثال کان اردشیرون بله اردشیر مرکبه مذی هست و باوای هم ختم نشده لذا غیر منصرف است قبل از اسلام بوده چون ما هم بریم بریم بریم از این زانه من بریم اذا کان اعجميان زمانی که بله زمانی که علم غیر اعجمی باشه چی میگم آدمی باشه اضاکان اعزمی هست زمانی که علم چه باشه؟ اعزمی باشه یعنی غیر عربی باشه غیر سلاتی یعنی. سلاتی نباشه ساکن الوسطی سلاتی که ساکن الوسط هست نباشه مانند رد الله یوسف الى یعقوب یوسف و یعقوب هر دو تا جبتشون اینا اعزمی هست سه لذا بله لذا چیه هستن غیر منصرف اما اگر سلاسی بودند که وسطشون ساکل بود اون موقع دیگه ممنوع منصرف نبودند پس اینا تا اینجا ای کار بود اما یکی دیگه هنوز مونده راست و اذا کان علا اسمایل چی؟ ابراهیم همشون نداره اسماعیل ابراهیم هست همین گوزین هستن عجمی عربی نیستن اون هستن غیر, غیر منصرف هستن چرا منصرف یک علما دو غیر عربی تا اسم از سنگ محمد نوح محمد که عربیه کلمه گفت دیگه غیر منصرف نمیشه غیر منصرف نیست باید شرایطش داره. نداره هم شرایطی نداره نوح به خاطر اینکه ثلاثی وسط ساکنه غیر منصرف نیست مؤنثا هم اگر سلاسی باشند ساکنل وسط باشند غیر منصرف نیستند اون موقع منصرفند اون موقع چی هند؟ ما اسما یا منصرفند یا غیر منصرف یا منونند یا غیر منون بریم پس و اذا کان علا وزن فعال زمانی که بر وزن فعال باشه همون عدل هست اگر در کتاب نحوه میر شما خوندید معدولا به این وزن فائل معدول شده از وزن فائل امر زفار بله. امر که از عامر عدل شده معدول شده ظفر از مدار فس مدار غیر منصرفه آقای شیخ سهیل مدار چه غیر منصرفه بدلیل علم بودن و بر وزن فائل بودن که عدل شده از کلمه که بر وزن فائل است. این علم بود پس علم ها چه زمان غیر منصرفن زمانی که یک دو سه چار پنج شش این تا سبب دیگه درشون می بود غیر منصرف می بودن یکی از این تا در علم بیاد اون علم چی میشه؟ غیر منصرف. یکی از این تا که نام بردیم در علمی وجود داشت اون علم چی هست این ولی علم بود حالا میریم تو صفت ها که از نیان صفت ها کدوم ها ممنوع من از هستند کدوم ها غیر منصرف هستند صد و نوات وزن فیل معنی دی یع رو بابن صد و نوات. تمنع صفتو من التنوین صفت ممنوع از تنوین هست یا به عبارت غیر منصرف هست یا به عبارت تنوین نمی پذیرد الف اذا كان على فعلان زمانی که بر وزن چی باشه فعلان باشه الذي لا تلحق فعلانی که سر مؤنثش تاء تنیس نمیتونه بیاد نمیشه مؤنثشو گفت فعلانه تو پس زمانی که کلمهی بر وزن فعلان باشه بر وزن چی باشه فعلانی که معنسش تاء تنیس نمیپذیره اون کلمه مانند غربان بر وزن چه است؟ بله پس غربان غیر منصرفه به خاطر اینکه بر وزن فعلان هست پس هر صفتی بر وزن فعلان باشه غیر منصرفه با اذا كانت على وزن افعل الذي لا تلحق الطم والنس زمانی که صفتی بر وزن افعلی باشه که مؤنثش تانه نمی پذیرد مانند احمر و ابيص من الورد ما هو احمر و ابيض اینا غیر منصرفند الى غیر منون هستند اما بیریم جلوتر جیم اذا سیغت من الواحدی الى العشرتی على وزن فعال و مفعال او كانت کلمت اخر زمانی که از یک تا ده درست بشه بر وزن فعال و مفعال مثالش آورده دخل العمال و مثنا بر وزن چه هست؟ بر وزن مفعل هست پس زمانی که از یک تا ده بر وزن فعال و مفعل باشه اون موقع چه هست؟ این کلمه بله مانند احاد و موحد مال یک اشار و معشر ثلاث و بله رباع و مربع پس بر وزن فعال و بله پس هرگاه از یک تا ده درست بشه بر وزن فعال و مفعل. یا کلمه اخر یا کلمه چی؟ کلمه اخر که جمع اخرا هست جمع چه هست؟ جاءت سیداتون اخرو اخرو غیر منصرف هست اما بیایید اسم چه زمانی ممنوع از علم رو گفتیم چه زمانی غیر منصرف است. صفتو گفتیم اگر کلمه صفت بود یکی از این ستایی که نام بردیم بر وزن فعلان بود یا بر وزن افعل بود یا بر وزن فعال و مفعل بود اون موقع غیر منصرفه حالا اسمو میگه اذا ختمه به علف تعنیفی المقصورتی او الممدوده میگه اگر اسمی مختومه به علف معنیس بود اون علف چی مقصوره بود چی؟ ممدوده اون موقع اون کلمه غیر منصرفه اون اسم غیر منصرفه مانند قدم تو به بباشرا بشرا غیر منصرفه چرا؟ چون اسمی هست که آخرشه هست الف تانیسه <مقصوری> مکسوره <مقصوری> داره داخل تو روضه فیحاء این هم الفه ممدوده داره با اذا کان علی صيغه منتهى الجموع زمانی که اسم بر صيغه منتهى الجموع باشه اون موقع غیر منصرف اسمانند چی تحتاج مصر الى مصانع مصانع غیر منتهی الجموع منتهی الجموع میدونید به چه کلمه میگن کدوم نه روش صادقی نسبت به که بعد از جمع دو تا حرف یا بیشتر داره معنندی مساجد که بعد از علفه چند تا حرف داره بله تا داره مساجد غیر منصرفه خب پس زمانی که غیر منتهال جنوبش ایست و معنندی یا بتدئو تاریخو با قاصی صح این قافیسه هم منتلجمیه هست. بله. حرف پشتو با, با اون کسی تشخیص نمیده که این آخرین جمله شینه. تو تمام جمع رو نمیشناسن نه؟ بله. گفتن زمانی که بعد از علیف جمع دو تا حرف یا بیشتر بیاد این غیر این دیگه منتلجمیه. مثلا رجال رجال منطقه منطقه نیست خو طاجی مثلا بعد بعد elif آخرش نمی بعد از elif چند حرف اومده قر م... پس منتها الجمع الممنوع من التنوين یجر بالفتحه حکم دیگه اش این هست اعرابش رو توضیح بده میگه ممنوع از تنوین زمانی که مجرور شد فتحه میگیره به جای کسره به جای کسره چی میگیره یجر بالفتحه کی مجرور میشه با فتحه الا اذا کان مضافا مجر زمانیکه غیر منصرف مضاف باشه او محلا به الف یا الفلام داشته باشه فیجر به کسر در این دو حالت هرگاه با مجروع شد دیگه کسر میگیره مانند لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم احسن غیر منصرفه ول چون مضافحه کسر گرفته یا مانند دخل تو فل مساجدی اینجا چون الفلام داره چی گرفته؟ کسر گرفته پس این احکامات غیر منصرف بودن که حقا و انصافا جناب شیخ شیخ علی جارم و متصاعمین به خوبی اینا رو یک جا جنگ کرده بودن